مولا علی موسی شاه مولا علی, موسر مولا علی موسر فرزند بیت مولا علی موسی این که دل های ما مولا علی موسی الرضا لب سما مولا علی موسی الرضا این شاه مولا علی موسر فرزند این چه مولا علی موسر رضا این کبه دل های ما مولا علی موسر رضا ذکر لب ارض و سما مولا علی موسر رضا دلبر تو بسنم از ازل ازینون ببریدم من در میان دلبران عشق تو را بوگزیدم اندر میون دلبران عشق تو را بوگزیدم زیرا به برگاه تو من دریا یر دیدم دیده امی ای هشتم این مولای ما مولا علی موسر رضا ای پور شاه لافتا مولا علی موسر رضا فرزند بیت حل اتا مولا علی موسر رضا ای کبه یه دل های ما مولا علی موسر رضا ذکر لب ارز و سما مولا علی موسر رضا هر دم به باغ آرزو شوقه به سالت سرزنم در لحظه این شیدان دلم همچون که بوتر پرزنم پر شاید که یک بوسه لبم برپای آن دل برزنه ای نور چشم مصطفی مولا علی موسر زن، ای پور شاهنام فتام مولا علی موسر زن فرزند بیت هلتام مولا علی موسر زن ای چه بیهديل های ما مولا علی موسر زن زکریه لبه ارزون سما مولا علی موسر زن ای قبلی ها ما مولا علی موسر زن ای قبلی ont mon nom mon mon